اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون به نام خداوند بخشنده بخشایشگر مؤمنان رستگار شدند الّذین هم فی صلاتهم خاشعون آنها که در نمازشان خشوع دارند هم عن اللغو و آنها که از لقو و بیهودگی روی گردانند و آنها که زکات را انجام میدهند و آنها که دامان خود را از آلوده شدن به بی افتی حفظ می کنند الا علی ازواجهم او ما غیر تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهرهگیری از آنان ملامت نمیشوند. فمن وراء ذلك هم العادون و کسانی که غیر از این تریید را طلب کنند تجاوز گند و, و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت میکنند. والذين هم على صلواتهم يحافظون و آنها که بر نمازهایشان مواظبت مینمایند اولئک هم الوارثون عاری آنها وارسانند الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون وارثانی که بهشت برین را ارس میبرند و جاف دان در آن خواهند ماند ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین و ما انسان را از اصاره از گل آفریدیم. ثم جعلناه نطفتا في قرار بکین سپس او را نطفه در قرارگاه مطمئن رحم قرار دادیم ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه ثم انشعناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین سپس نطفه را به صورت علقه خون بسته و علقه را به صورت مزقه چیزی شبیه گوشت جویده شده و مزقه را به صورت استخانهایی درابردین و بر ها گوشت پوشندین سپس آن را آفرینش تازه ای دادین پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است سم بعد ذالک لمیتون سپس شما بعد از آن می می رید یوم القیامت تو پس در روز قیامت برانگیخته می‌شوید. و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما كنا عن الخلق غافلین. ما بر بالای سر شما هفت راه طبقات هفت گانه آسمان قرار دادیم و ما هرگز از خلق خود غافل نبودیم و آن زلّا من السماي ما بقدر فاسكن له في الأرض و اينا على ذهاب به لا و از آسمان آبی به اندازه معيّن نازل کردیم و آن را در زمین در جاي مخصوصی ساكن نمودیم. و ما بر از بین بردن آن کاملا قادریم. فانشعنا لکم به جنات من نخیل و اعناب لکم فیها لکم فیها فواکه کثیرت و منها تأكلون. سپس به وسیله آن باغهای از درختان نخل و انگور برای شما ایجاد کردیم. باک‌هاایی که در آن میوه‌های بسیار است، و از آن میخورید و شجر تن تخرج سیناء تنبط بالدهن و و نیز درختی را که از تور سینا می‌روید، درخت زیتون، و از آن روقن و نان خورش برای خورندگان فراهم میگردد آفریدیم این لكم في الأنعام لعبرة نسقیكم مما فی بطونها ولکم فیها منافع كثیرة ومنها تأكلون و برای شما در چهار پایان برتی از آنچه در درون آنهاست از شیر شما را سیراب می‌کنیم. و برای شما در آنها منافع بسیاری است و از گوشت آنها میخورید ولومون و بر آنها و بر کشتیها سوار میشوید وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم او به آنها گفت ای قوم من خداوند را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست آیا از پرستش بتها پرهیز نمی کنید؟ فقال الملع الذين كفروا من قومه ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه مما سمعنا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين جمعيه اشرافي مقرور از قوم نوح که کافر بودند گفتند این مرد جز بشری همچون شما نیست که میخواهد بر شما برتری جوید. اگر خدا میخواست پیام بفرستد فرشتگانی لازم میکرد. ما چون این چیزی را هرگز در نیاکان خود نشنیده ایم. این هو ایلا رجل به جنت فتربص به حد حین او فقط مردی است. که به نوعی جنون مبتلاست پس مدتی درباره او صبر کنید تا مرگش فرا رسد یا از این بیماری رهایی یابد بی نوح گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب های آنان یاری کن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 فسلک فیها من کلین زوجین اثنین و اهلک من سبق علیه القول منهم و لا مغرقون ما به نوح وحی کردیم که کشتی را در حضور ما و مطابق وحی ما بساز و هنگامی که فرمان ما برای قرغ آنان فرارسد و آب از تنور بجوشد که نشانه فرارسیدن طوفان است از هر یک از انواع حیوانات یک جفت در کشتی سوار کن و همچنین خانواد را مگر آنانی که قبلن وعده هلاکشان داده شده همسر و فرزند کافرت و دیگر در ستمگران با من سخن مگو که آنان همگی حلاک خواهند شد فَإِذَا سْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ و هنگامی که تو و همه کسانی که با تو هستند بر کشتی سوار شدید بگو ستایش برای است که ما را از قوم ستمگر نجات بخشید و قر ربی انزلی منزلن و خیر المنزلین و بگو پروردگارا ما را در منزلگاهی پر برکت فرودار و تو بهترین آورندگانی این فی ذالک لآیات و ان کن در این ماجرا برای صاحبان عقل و اندیشه آیات و نشانههایی است و ما مسلما همگان را آزمایش میکنیم. ثم انشأنا من بعدهم آخرين. سپس جمعیت دیگری را بعد از آنها به وجود آوردیم فأرسلنا فیهم رسولا منهم أناعبدوا الله ما لكم من إله غیره أفلا تتقون و در میان آنان رسولی از خودشان فرستادیم که خدا را بپرستید جز او معبودی برای شما نیست آیا پرهیز نمی کنید؟ وقال الملع من قومه الذین کفروا و کذبوا بلقاء الاخرة و اطرفناهم في الحياة الدنیا ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما من تاكلون منه ويشرب مما من ولی اشرافیان خودخواه از قوم او که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب میکردند و در زندگی دنیا به آنان ناز و نعمت داده بودیم گفتند این بشری است مثل شما از آنچه میخورید میخورد و از آنچه می نوشید می نوشد. پس چگونه میتواند پیام بر باشد؟ وا این و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید مسلما زیان کارید ایا, اذا و ترابا و مخرجون آیا او به شما وعده می دهد هنگامی که مردید و خاک و استخانهایی پوسیده شدید بار دیگر از قبرها بیرون آورده می شوید؟ هیهات هیهات توعدون هیهات پیهات از این وعده هایی که به شما داده می شود این الا دنیا نتو و ناخیه و ما نحن بمبعوثين. مسلما غیر از این زندگی دنیای ما چیزی در کار نیست پیوسته گروهی از ما می میریم و نسل دیگری جای ما را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. ان هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين او فقط مردی دروغگوست که بر خدا افترا بست و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد قال رب انصرني بما كذبون پیامبرشان گفت پروردگار ها مرا در برابر تکذیب های آنان یاری کن قال لا يصبحن خداوند فرمود به زودی از کار خود پشیمان خواهند شد اما زمانی که دیگر سودی به حالشان ندارد فأخذتهم بالحق فجعلناهم فبعدا للقوم سرانجام سیحه آسمانی آنها را به حق فرو گرفت و ما آنها را همچون خاشاکی بر سیلاب قرار دادیم دور باد قوم ستمگر از رحمت خدا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا سپس اقوام دیگری را پس از آنها پدید آوردیم ما تسبيق من امته اجلها و ما يستاخرون هیچ امتی بر عجل و سررسید حتمی خود پیشی نمیگیرد و از آن تأخیر نیز ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعد لقوم لا يؤمنون سپس رسولان خود را یکی پس از دیگری فرستادیم. هرزمان هر زمان رسولی برای هدایت قومی می آمد او را تکذیب می کردند. ولی ما این امتهای سرکش را یکی پس از دیگری هلاک نمودیم و آنها را احادیسی قرار دادیم دور باد از رحمت خدا قومی که ایمان نمی آبرند. ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلیلی روشن فرستادیم. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او اما آنها تکبر کردند و آنها مردمی برتری جوی بودند فقالوا اَنُؤْمِنُ آنها گفتند آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم در حالی که قوم آنها بردگان ما هستند؟ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا من المهلكين آری آنها این دو را تکذیب کردند و سرانجام همگی گی شدند. ولقد قد آتینا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. و ما به موسا كتاب آسمانی دادیم شاید آنان هدایت شدند. وجعلنا بن مريم و امه او و و آوینا هما الى ربوت ذات قرار و معین و ما فرزند مریم و مادرش را آیت و نشانه ای قرار دادیم و آنها را در سرزمین مرتفعی که دارای امنیت و آب جاری بود جای دادیم یا ایوها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا اینی بما تعملون علیم ای پیام بران از قضاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید که من به آنچه انجام می دهید آگاهم و این همی امت کم امت واحده و آن رب کم فتقوون. و این امت شما امت واحده است و من پروردگار شما هستم. پس از مخالفت فرمان من بپریزی. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اما آنها کارهای خود را در میان خیش به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند و عجب اینکه هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند زَجَرُوْم فِي ظَمَرَتِهِمْ حَتَّى حِين آنها را در جهل و قفلتشان بگذار تا زمانی که مرگشان فرا رسد یا گرفتار عذاب الهی شوند. آنها گمان میکنند، اموال و فرزندانی که به عنوان کمک به آنان میدهیم. بل لا برای این است که درهای خیرات را با شتاب به روی آنها چون چنین نیست بلکه آنها نمیفهمند که این وسیله امتحانشان است ان الذين هم من مشفقون مسلما کسانی که از خوف پروردگارشان بین ناکند بی و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان می‌آورند و آنها که به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوَ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ و آنها که نهایت کوشش را در انجام تاعات به خرج میدهند و با این حال دلهایشان حراسناک است از اینکه که سر انجام به سوی پروردگارشان باز میگردند. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون آري چنين كساني در خیرات سرعت ميكنند و از ديگران پيشي ميگيرند ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم و نزد ما است که تمام اعمال بندگان را ثبت کرده و به حق سخن می گوید و به آنان هیچ ستمی نمی شود بل قلوبهم هم فی غمرت من هذا و لهم اعمال من دون ذالک هم لها و لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلی دلهای آنها از این نامه اعمال در بیخبری فرو رفته و اعمال زشت دیگری جز این دارند که پیوست آن را انجام میدهند حتی اذا اخذنا مترفیهن بالعذاب اذا هم تا زمانی که متنعمان مقرور آنها را در چنگال عذاب گرفتار سازیم در این هنگام ناله های دردناک و استقاس آمیز سر میدهند لا اليوم این من اما به آنها گفته می شود امروز فریاد نکنید زیرا از سوی ما یاری نخواهید شد. قد کانت آیاتی علیکم علی آیا فراموش کرده اید که در گذشته آیات من پیوسته بر شما خانده میشد اما شما اعراض کرده به عقب باز میگشتید؟ در حالی که در برابر او پیامبر استکبار می کردید و شبها در جلسات خود به بدگویی می پرداختید. القول ام ما آیا آنها در این گفتار نیندی شیدند؟ یا اینکه چیزی برای آنان آمده که برای نیاکانشان نیامده است ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون یا اینکه برشان را نشناختند و از سوابق او آگاه نیستند از این رو او را انکار میکنند؟ ام يقولون به جن بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون یا میگویند او دیوانه است ولی او حق را برای آنان آورده اما بیشترشان از حق کراهت دارند ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فی بل اتینا هم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون و اگر حق از هوسهای آنها پیروی کند آسمان ها و زمین و همه کسانی که در آنها هستند تباه میشوند. ولی ما قرآنی به آنها دادیم که مایه یادآوری و عزت و شرف برای آنهاست اما آنان از آنچه چه یادآوریشان است روی گردانند ام خرجا فخراج ربی خیر و خیر یا اینکه تو از آنها مزد و هزینهی در برابر دعوتت میخواهی با اینکه مزد پروردگارت بهتر و او بهترین روزی دهندگان است و اینکه لتدعوهم الى صراط مستقیم به طور قطع و یقین تو آنان را به راه راست دعوت می کنیم و این الذین لا يؤمنون بالآخرت عن الصراط لناکبون اما کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این راه منحرفند و لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا للجو, للجو فی طغیانهم يعمهون. و اگر به آنان رحم کنیم و گرفتاری ها و مشکلاتشان را برطرف سازیم نه تنها بیدار نمی شوند بلکه در طغیانشان لجاجت می و در این وادی سرگردان میماند ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا ما, ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند اما آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش می میکنند حتی اذا فتحنا علیه بابا ذا عذاب شدید اذا هم اذا هم این وضع همچنان ادامه یابد تا زمانی که دری از عذاب شدید به روی آنان بگشاییم و چنان گرفتار میشوند که ناگهان به کلی معیوس کردند وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو است که برای شما گوش و چشم و قلب ایجاد کرد اما کمتر شکر او را به جایی آورید وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون و او کسی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور میشوید. و الذيیحی ویومید و نفلی و افلا تعقلون و او کسی است که زنده می کند و می, می راند و رفت و آمد شب و روز از آن اوست آیا اندیشه نمی کنید؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون نه بلکه آنان نیز مثل آنچه پیشینیان گفته بودند گفتند قالوا ا اذا متنا و کنا ترابا و عظاما ا انا ا انا لمبعوثون آنها گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخانهایی پوسیده شدیم آیا بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟ لقد وعدنا نحن من قبل این هذا این هادا اساطير این وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده این فقط افسانه‌های پیشینیان است قل لمن الارض وما فيها كنتم تعلمون بگو زمین و کسانی که در آن هستند از آن کیست اگر شما میدانید زيقولون لله قل افلا تذكرون به زودی در پاسخ تو میگویند همه ازان خداست بگو آیا متذكر نمیشوید؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم بگو چه کسی پروردگار آسمان‌های هفت گانه و پروردگار عرش عظیم است. سَیَقُولُونَ لله قل أفلا تتقون به زودی خواهند گفت همه اینها ازان خداست بگو آیا تقوا پیشه نمی کنید و از خدا نمی ترسید و دست از شرک بر نمی دارید المن بی كل ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا لا یجار علیه و هو ولا يجار عليه كنتم تعلمون بگو اگر میدانید؟ چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد و به بی پناهان پناه می دهد و نیاز به پناه دادن ندارد خواهند گفت همه اینها ازان خداست بگو با این حال چگونه میگویید گویید شده اید بل اتیناهم بالحق و اینهم نه واقع این است که ما حق را برای آنها آوردیم و آنان دروغ میگویند گویند ماتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق ولعلا على بعضهم على بعض سبحان الله عمّا يصفون. خدا هرگز فرزندی برای خود انتخاب نکرده و معبود دیگری با او نیست که اگر چنین میشد هر یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره می کردند و بعضی بر بعضی دیگر برتری می جستند. منزه است خدا از آنچه آنان توصیف می کنند. عالم الغیب و عما يشرفون. او دانای نهان و آشکار است پس برتر است از آن برای او هم تا قرار میدهند قرب ایما ما یوعدون بگو پروردگار من اگر عذابهایی را که به آنان وعده داده می شود. به من نشان دهی و در زندگیم آن را ببینم ربی فلا تجعلی القوم پروردگار من مرا در این عذابها با گروه ستمگران قرار مده و انا علا ان نوری کما نعدهم لقادرون و ما توانائیم که آنچه را به آنها وعده می دهیم به تو نشان دهیم دفع احسن اعلم بدی را به بهترین راه و روش دفع کن و پاسخ بدی را به نیکی ده ما به آنچه توصیف می کنند آگاه تریم. وقر و بگو پروردگارا از وسوسه های شیاطین به تو پناه میبرم و ععوز و بینبی اخمرون و از اینکه آنان نزد من حاضر شوند نیز ای پروردگار من به تو پناه می برم حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربی ارجعون آنها همچنان به راه غلط خود ادامه می دهند تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد میگوید پروردگار من مرا بازگردانید لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت كلا اننها كلمه هو قائلها ومن ورائهم درزخ الى يوم بعثون شاید در اون که ترک کردم عمل صالحی انجام دهم ولی به او میگویند چنین نیست این سخنی است که او به زبان میگوید و اگر باز گردد کارش همچون گذشته است و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند ذا اذا نفخ في الصور فلا انسان سبب بينهم فلا انسان سبب بينهم يوم ولا يتساءلون هنگامی که در سور دمیده شود هیچ یک از پیوند های میان آنها در آن روز نخواهد بود و از یکدیگر تقاضای کمک نمی کنند چون کاری از کسی ساخته نیست فمن فقلت المفلحون کسانی که وزن اعمالشان سنگین است، همان رستگارانند و من خفت موازينه فأولائک فأولائک الذین خسروا انفسهم و آنان انفسهم جهنم خالدون که وزنه اعمالشان سبک باشد کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده در جهنم جاودانه خواهند ماند تلفح وجوه همون نار و هم فی ها سوزان آتش همچون شمشیر به صورتهایشان نواخته می و در دوزخ چهره ای عبوس دارند الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون به آنها گفته می شود. آیا آیات من بر شما خوانده نمیشد؟ پس آن را تکزید می کردید؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین می پروردگارا بدبختی ما بر ما چیره شد و ما قوم گمراهی بودیم ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإننا فا ظالمون پروردگارا ما را از این دوزخ بیرون آر اگر بار دیگر تکرار کردیم قطعا ستم گریم و مستحق عذاب قال اخسعوا فيها ولا تكلمون خداوند میگوید دور شوید در دو زخ و با من سخن مگوئید إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمننا فاغفر لنا وارحمنا و خیر الراحمین فراموش کرده اید گروهی از بندگانم می گفتند پروردگارا ما ایمان آوردیم ما را ببخشید و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری و منهم تضحکون اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید تا شما را از یاد من قافل کردند و شما به آنان نیخندیدید اینی جزیتهم اليوم بما صبرون انهم, انهم هم الفائزون ولی من امروز آنها را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم آنها پیروز و رستگارند خداوند میگوید چند سال در روی زمین توقف کردید لبثنا أو بعض در پاسخ میگویند. تنها به اندازه یک روز یا قسمتی از یک روز از آنها که میتوانند بشمارند بپرس. قال الا الا الا قلیلا لو انكم كنتم تعلمون میگوید آری شما مقدار کمی توقف نمودید اگر میدانستید. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون آیا گمان کردید شما را بیهوده آفرید ایم و به سوی ما بازگردانده نمیشوید وتعالى الله الملك الحق لا اله إلا هو رب العرش الكریم. پس برتر است خداوندی که فرمان روای حق است معبودی جز او نیست و او پروردگار عرش کریم است و من مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما, فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون و هر معبود دیگری را با خدا بخواند و مسلما هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت حساب او نزد پروردگارش خواهد بود یقینا کافران رستگار نخواهند شد و قرم و رحم و انت خیر راحمی. و بگو پروردگارا مرا ببخش و رحمت کن و تو بهترین رحم کنندگانی